ازدواج بین فرهنگ های متفاوت. من ایرانی هستم و خانم من آمریکایی است. بسیاری از مردم از شیندن این متعجب هستند. آنها میپرسند که چطور مردم با فرهنگ های متضاد می با هم دیگر کنار بیایند. صادقانه بگویم که ما اصلاً به این فکر نمی کنیم. اول از همه من فکر نمی کنم ایران و آمریکا دارای فرهنگ های خیلی متفاوتی می باشن. مردم هر دو کشور بسیار مهرمان و مهمان نواز هستند. دومند، من فکر می کنم که هر ازدواجی نیازمند ص و درک متقابل است. با وجود اینکه هر دو شریک در یک شرط بزرگ شدند، اما همیشه تووت در مورد شیوه زندگی وجود دارد. خوشبختانه ما خیلی انداف پذیر هستیم. اگر مخالفتی با هم دیگر داشته باشیم سریع نمیگویم که تو اشتباه می کنی. در عوض سعی می کنیم که دیدگاه های همدیگر را درک کنیم در مجموع من به اینکه ازدواج بین دو فرهنگ متفاوت عجیب است اعتقاد ندارم اگر عاشق کسی باشید تفاوت فرهنگی یک مشکل خیلی بزرگ به نظر نمی رسد